لحظه که کامیون ها در امتداد شب به راه افتادند یکی دیگر از سفرهای یک نواخت و خسته کننده ای ما آغاز شد. در تاریکی موجودیت خود را احساس نمیکردیم. فقط سر پیچهای تند زمانی که به یکدیگر فشرده می شدیم و یا گهگاک نور ضعیف سیگاری گونه ها و بینی یکی از چهره ها را که غیر واقعی تر از آن بود که درست به خاطر بیاید روشن میکرد وجود یکدیگر را احساس می‌کردیم. اتفاق چندانی پیش نیامد. چشمای من دیگر از عشق پر نشد. نوی اعتقاد به قسمت و تقدیر جای ترس و اندوه را گرفت. بدترین چیزی که ممکن بود اتفاق بیفتد مرگ بود. اما این واقعیت حراسناک نیست دست کم در آن دقایق دیگر مایه وحشت نبود. موتور فرسوده ی کامیون ها آنجا را جنجالی به پا می کرد که حتی صدای فریاد هم دیگر را نمیشنیدیم. دیگر هیچ کس جز برای گرفتن کبریتی که سیگارش را روشن کند، نای حرف زدن نداشت. در آن کامیون پار از سرباز، هر فرد چون ای بود از تنهایی که جز به خود به هیچ چیز نمی‌اندیشید. دیگر از نوک دوستی خبری نبود و همه چیز به حفظ و بقای خود محدود میشد. آری هیچ کس علاقی به حرف زدن نداشت. گویی همه در سرنوشت اندوه بار خود غرق شده بودند. من هم به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم فهمیدم که چه سرنوشت تلخی در انتظار ماست. دیگر از صدای مطارک که گوش های خسته ما را می آزرد خبری نبود. بلکه سفیر گلول ها و تنین انفجار ماه مات خانه بود که گوش های ما را کر می به طرف در خروجی خزیدم و نگاهی به بیرون انداختم. از کنار گاری هایی که در جهت مخالف ما محمول سیاه رنگی را هم می‌کردند گذشتیم چند لحظه بعد متوجه شدیم که گاری ها را هم می که در نهایت نظم و ترتیب نژاد قدیمی توتون کنار هم چیده شده بودند. نمی توانستیم بگوییم مجروحند یا نه؟ شهر دورن و رودخانه رور را پشت سر گذاشتیم و هنگامی که توقف کردیم خط نقره‌ای سحر و شعله‌های آتش افق مشرق را روشن میکرد در حالی که کامیونها برمیگشتند ما به ستون یک به سوی آتش به حرکت درآمدیم صدای انفجار ناگهانی و فوارهی از خاک و غلو سنگ در آن صبح یخ زده ما را از بحت و گیجی درآورد اولین شلیک ها شروع شده بود اگرچه کسی آسیب چندانی ندید اما باعث وحشت و فرار دیزیادی زیادی شد در حالی که کول پاشتی ها را به دوش می کشیدیم در طول جاده شروع به دویدن کردیم قولوله دیگری در مسیر حرکت ما شلیک نشد اما ما همچنان به دویدن ادامه دادیم تا به تابلوی زرد رنگ بزرگی رسیدیم که روی آن با حروف درشت نوشته شده بود آخن خانه های کوچک و متروک از حومه شهر خبر می داد و چتر سیاهی از قبار نشانگر شهر در دسته های پراکنده به راهپیمایی ادامه دادیم. حالا دیگر صداها را واضحتر می‌شنیدیم و وقتی به مرکز شهر نزدیک شدیم، صدای رگبار مسلسل و انفجار خمپاره به دیگر صداها اضافه شد. در طول راه، خانه‌ها یا سوخته و ویران بودند یا به تلی از خاک و آجر تبدیل شده بودند. اگر صدای شلیک گلوله‌ها از تحرک نظامی قابل ملاحظه خبر می‌داد. اما در خیابان ها به جز سوخته و خودروهای واشگون شده چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. شیشه‌های شیشه های خورد شده در پیادهروها برق میزد و کابل های تکه تکه شده یه شبکه ای روی زمین ولو بود. از درو پنجره های سیاه و سوخته بعضی ها بوی زننده سواله آمیخته با بوی باروت و اجساد رو به تلاشی به مشام. پشت دیوار یکی از خانه های مطروک دور افسر فرمانده حلقه زدیم. از داخل یکی از خرابه ها دو نفر که اسلحهی کمری بسته بودند بیرون آمدند. یکی از آنها سرگرد بود و کلاه آهنی به سر داشت. و دیگری که سرش را بان پیچی کرده بود صدفانی کم بود. آنها به افسر اس اس خوش گفتند و او هم متقابلا به آنها فاسخ داد. سپس سه نفری به کناری رفتند و مشغول گفتگو شدند سرانجام سرگرد به طرف ما آمد. نگاهی به ما انداخت و بدون هیچ گونه واکنشی دوباره به سوی افسر اس اس برگشت. با این بچه چه میخواهید بکنید؟ اینها قصد فرار داشتند. اما آخه از اونها که کاری ساخته نیست. اونها فقط یه مش بچه هم. جناب سرگرد در این شهر اعضای سازمان جوانان هیتلری دارند. شانه به شانه سربازان ما می جنگند. اینها دانش آموزان مدرسه هیتلر هستند آنها باید به نحوی این را ثابت کنند و خودشان را نشان بدهند اگر نتوانند تفنگ به دست بگیرند دست کم میتوانند یک بازوکا آتش کنند یا از آنها میتوان به عنوان پیک استفاده کرد سرگرد نطخ آمیز او را قطع کرد و گفت بسیار خوب سپس فرماندهان همراه با سرگرد از بقیه جدا شدند و در حالی که تقریبا به نخش نگاه میکردند، با یک دیگر وارد مذاکره شدند. پس از پایان گفتگوها جمع ما به چندین گروه تقسیم شد و هر گروه همراه با فرمانده خود در مسیرهای گوناگون راه افتادند و به زودی در مه خاکستری رنگ صبحگاهی که روی خرابه ها افتاده بود، ناپدید شدند. سرگرد گفت شما با ما بیایید. ما و صدفانی که سرش را بان پیچی کرده بود، دنبال او راه افتادیم. از آتش سلاحها ها کاسته شده بود سطفان گفت امریکایی ها دارن صبحانه گوشت خوک و تخم مرغشونو میخورن ما موفق به درکی این لطیفه نشدیم دللا دللا میدویدیم و در بعضی قسمت ها سین خیز از میان خرابه ها می و خلاصه از زمین به عنوان پوششی علیه دشمن که از دید ما مخفی بود استفاده میکرد. از خیابانی که در اثر بمباران مانند دهانی آتشفشان شده بود گذشتیم. از تودهی خاک و سنگ که در طرف دیگر هم باشته شده بود بالا رفتیم و سپس به داخل گودالی سرازیر شدیم و از دیواری که قسمت‌هایی از آن فرو ریخته بود وارد زیر زمین خانه شدیم که مثل بقیه جاها آسیب دیده بود. سقف زیر زمین روی چند تکه تیر چوبی بزرگ بند بود و خانه مخروبهایی. که در طبقه بالا بود حفاظ خوبی در مقابل آتش خمپارنداز ایجاد می کرد جایگاه گروه نارنجک شد سطفان ما را به اتاقه که بیروزنهی هدایت کرد که کف آن پوشیده از خمپارنداز بود سطفان گفت همینجا بمانید و تا به شما اجازه داده نشده خارج نشید روشنایی روز از پنجره سخفی اتاق مقابل ما به درون می آمد. البته غیر از آن شیشهی وجود نداشت خمپار را یکی یک از زمین بر می داشتیم. در ضمن کار یک چراغ رومیزی پیدا کردیم وقتی لودویک دو شاخی آن را به برق وصل کرد و چراغ روشن شد شکت تردید جای خود را به خنده داد دور آن حلقه زده بودیم و آن چرا که به چشم می دیدیم باور نمی کردیم رغم تمام خرابی ها هنوز. جریان برق برقرار بود. شالکوف گفت، دو را از برق در بیار و چراغ و لابلای وسایلمون پنهان کن. اگه سربازا بفهمن دیگه هیچ وقت اونا نخواهیم دید. راست میگفت: اما اگر مجبور بودیم آن را پنهان کنیم، پس دیگر چه ای داشت؟ قبل از اینکه فرصت بیشتری برای تفکر این مورد داشته باشیم، همگی به نزد سرگرد احضار شدیم. جان کلامان که حضور ما باعث دردسر شده بود. سرگرد گفت که قصد ندارد از ما استفاده کند مگر اینکه که و احوال او را به چنین کاری وادار نماید. به هر اقدامی برای برگرداندن ما به خانه هایمان دست خواهد زد و نتیجه اینکه تا مدتی باید آفتابی نشویم و کسی هم صدای ما را نشنود. غذا بسیار کمیاب بود. گهگاه مقداری سوپ از جایی میرسید. گرچه در ده روز اخیر از سوپ هم خبری نبود. آتش روشن کردن ممنوع بود حتی برای آشپزی. مقادیر زیادی سیب زمینی در زیرزمین بود که در موقع گرسنگی فقط لازم بود آن را پوست بکنیم. از قرار معلوم سیب زمینی خام بیش از پخته آن ویتامین داشت. از سرگرد شنیدیم که در حال حاضر موقعیت جبه نسبتا خوب است. از آنجا که احتمال میداد ما هم در عملیات شرکت کنیم، موقعیت را در روی نقشه برای ما تشریح کرد بر اساس پیش بینی آمریکایی ها به تدریج از شمال جنوب و غرب به داخل شهر نفوذ می کردند و فقط باری که از سمت شرق باز بود پس از این توجیه مختصر ما را به پرسنل ستاد قرارگاه که عبارت بودند از یک ستوان دو استوار و یک سرجوخه معرفی کرد محل مجاور نیز محل وسایل کمک‌های اولیه و دفتر افسر مسئول بهداری بود اما در انبوه درهم و برهم آجر، سنگ، سیمان و چوب و سیم‌های برق ممکن نبود بتوان آنجا را دید و به همین دلیل سایر قسمت‌های گروهان هم قابل رؤیت نبود برخلاف انتظار روز بعد سرگرد ما را از بقیه افراد جدا کرد و به خانه‌ای برد که در اثر حسابت گلوله توپ یا بمب ویران شده بود و به صورت مقرر دیدبانی مورد استفاده قرار می گرفت. حنگامی که از سراخهایی که در دیوار ایجاد شده بود، به آن طرف نگاه کردم به آتشه، گاه و بیگاه مسلسلها و خیابانی که زیر آواری از خانه های ویران بر جای مانده بود، چیز دیگری دیده نمیشد. بعضی خانه ها هنوز بر جای بودند، اما بعید بود که آسیبی ندیده باشند. کمی دورتر آسمان خراش کوچکی دیده میشد. سرگرد گفت، اونجا ایسکای قطاره. از پشت ساختمان نگاه کردیم که دیده بهتری داشت. بمبها بیشتر ساختمانها را با خاک یکسان کرده بودند. من پرسیدم، امریکایی ها کجا هستند؟ با حرکت مپمه دستش به طرف جنوب غربی اشاره کرد و گفت، اونجا؟ سربازان ما کجا هستند؟ او نقاط گوناگونی را داد برای من همه جا یکسان بود ویرانه ای انباشته از قلب سنگ که هیچ جنبنده‌ای در آن نبود پیش از این هر وقت به جنگ می همیشه دو خط در مقابل یکدیگر در نظرم مجسم میشد شد که گرچه همیشه روشن و واضح نبود به هر حال روبروی هم قرار داشت اما دریافتم که چیزی به نام طرف مقابل وجود ندارد سربازان مانند جوجه تیغی در استتار کامل و با دقت و حوصله با دشمنی که نه در جهت مقابل بلکه از نظر جغرافیایی در امتداد یک خط بود می جنگیدند. فقط زمان بود که تفاوت نحوه استطار نیروهای خودی را از نیروهای دشمن به ما آموخت دو هفته اول موضوع خاصی پیش نیامد قوقای جنگ غیر قابل تشخیص نبود ولی بخش عمده آن در مناطق شمالی شهر متمرکز بود ناوگان هوایی متفقین در طول روز یک تا دو بار ظاهر می شدند و با بمباران های سنگین زمین ها را شوخ می زدند. اقرب به طور نامنظم زیر آتش خمپاره و مسلسلها بودیم، اما آن هم هرگز بیش از چیزی نبود که اسمش را آتش ایزایی گذاشته بودیم. البته ابتدا همه ترسیده بودیم ولی چیزی نگذشت که آرامش محسوسی جای تنش های روانی را گرفت. ویرانی بیمانند این تصور را در من به وجود آورد که مردم شهر را تخلیه کردند برای من باور کردنی نبود هنگامی که از یکی از گروهبان ها شنیدم بسیاری از مردم بسیاری از خانواده ها هفته هاست که در زیر زمین ها زندگی می کنند. زندگی در دخمه تنگ دنیای ما را تنگ کرده بود از آنچه در بیرون می گذشت بیخبر بود و از چیزهای کمی هم که می دیدیم درک روشنی نداشتیم و از این رو در حراس و تردید فضایندهی دست و پا می زدیم. سروازان می آمدند و می رفتند و ظرف چند ثانیه در کام ویران ها از نظر نابدید می شدند. در آن موقع نامهی به مادرم نوشته بودم. سربازی که به دورن برمیگشت گشت، قول داد آن را به مادرم برساند. واقعا نمیدانستم چه بنویسم. به هر حال با شتاب نوشتم که حالم خوب است و جای نگرانی نیست و او بهتر از مواظب خودش باشد. از اینکه کجا هستم و چه می کنم حرفی نزدم. چند هفته پیش قبل از اینکه به آخن بیاییم به علت نقل و انتقال مداوم وقت پرداختن به آنچه در خانه ایمان می گذش نداشتم. آیا مادر و برادرم هنوز زنده بودند؟ آیا خانه هنوز به همان شکل سر پا بود؟ و خیلی چیزهای کوچک دیگر؟ روزی که با چرت زدن، برق بازی و بیکاری به بتالت بگذرد، به ابتزال کشیده می شود. تیراندازی و شلیک توبخانه و اندازی صدای رادیو یا رفت آمد نقلیه نقلی در یک خیابان اصلی برای ما عادی شده بود. تیراندازیها خطری در پی نداشت و ما هم چندان نگران نبودیم. تنها موضوع درد خودمان بودیم. ظاهراً بیش از اندازه حساس شده بودیم. از کوچکتری موضوعی می رنجیدیم موش ها هم دست از سر ما بر نمی‌داشتند. هر وقت گیرشان میآوردیم سرنیزه را توی تنشان فرو می کردیم. از این گذشته چهار چشمی موجودی سیب زمینی را می پایییدیم صرف دو هفته بیش از بیست و چهار تا موش که در اثر سرما منجمد شده بودند جلوی در ورودی افتاده بودند لشکر موشها با چشم و دهان هایی که هنوز باز بود. و آن دندان های خبیص و تیزشان که آماده جویدن بود به طرز چند شاوری مرا بیاده هم نوعانم آنم انداخت اغلب وقتی به کله های کوچکشان نگاه می کردم، مثل این بود که به سر و صورت سربازان مرده مینگرم همانطور که سرگرد گفت غذایمان ما کافی نبود صبح ظهر و, و شب غذای ما زمینی خام بود که دیگر حالمان را به هم می زد. گاه یکی از کنسروهای خود را به آن اضافه می‌کردیم اما می‌دانستیم که باید در مصرف مواد غذایی خیلی سرفجویی کنیم وقتی که کامیون مواد غذایی ظاهر شد دوبار به ما سوپ دادند سوپ سرد دوباره چاره می‌گشتیم که فکری به خاطرم رسید که ما را از آن مصیبت نجات داد هنوز برق داشتیم آب هم گرچه زیاد تمیز نبود اما هنوز قطع نشده و جریان داشت چراغ و چنگال هم داشتیم و من یک کاسه لابی هم در کول پشتی داشتم. سیم را از چراغ کندم و دو سر آن را با نوار آیق به چنگال وصل کردم. بعد یک قطعه چوب بین دو چنگال قرار دادم و با نوار آیق همه را محکم به هم بستم. چند تا سیب زمینی در کاسه انداختم و کاسه را پر از آب کردم و چنگال ها را در حالی که از سیم آویزان بود داخل کاسه گذاشتم. چشمایم را بستم و دو شاخه رو توی پریز برق فرو کردم هر لحظه منتظر جرقه های سبز و آبی بودم اما هیچ اتفاقی نیفتاد مشتاقانه به کاس چشم دوخته بودم که ناگهان آب به جوش افتاد نقشم درست از آب درآمد اشکال قضیه این بود که از ترس آنکه مباد آب هادی جریان برق شود نمک در آن نریخته بود بقیه ی بچه ها در راه رو نشسته بودند و طبق معمول ورق بازی می کردند. آب جوش آمد و بخار آن به هوا بلند شد. لوتر نگاهی سرسری به من انداخت و دوباره به ورقهایش هایش شد. اما ناگهان برگشت و به من نگاه کرد. بخار آب را که دید به هوا پرید و بقیه را هم متوجه ماجرا کرد. همه یک صدا فریاد زدند. هیچ می چه کار داری می کنی؟ با خون سردی پاسخ دادم. دارم چند تا سیب زمینی می بزم از آن به بعد اتاق ما با آشپزخانه گروهان تبدیل شد و خودمان هم شدیم سراشپز های قرارگاه و دست مزدمان عبارت بود از غذاهای قنیمت گرفته شده آمریکایی به صورت کنسرو و پودر همچنین سیگاری به نام اولد گولد بیشتر وقتها دور هم کف زمین مینشستیم با انگلیسی دست و پا که می دانستیم به زحمت پشت پاکتی را میخواندیم و سعی می کردیم. هر طور شده طرز تهیه آن غذا را کشف کنیم متاسفانه وسایل آشپزی ما جا سوپ یا آبگوشت گوشت اجازه پختن چیز دیگری را نمیداد. به هر حال استفاده دیگری که از این اختراع کردیم آن بود که توانستیم خود را از شر ها خلاص کنیم به این معنی که در هر نوبت یک زیرپوش را در ظرف آب جوش میانداختیم. به زودی سستی و بیکاری از میان ما رخت بربست تمام روز را شادمانه به تلاش میگذراندیم. تنها به این خاطر که مقام آشپزی قرارگاه را برای خود حفظ کنیم.